از گر با هر که ام با میخان رسم باردگر به جز از خدمت رندان نکنم کاردگر خرم اون روز که با دیده گریان بروم تازنم آب در میکده یک باردگر خرم روز که با دیده گریان بروم تازنم آب در میکده یک باردگر معرفت نیست در این قوم خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشنا هاشل الله گربم منز پیه یار دگر گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آورمش باز به پرگار دگر آفیت می خاطرم ار بگذارند غمزه شوخش و انطره درار دگر راز سربسته مابین که به دستان گفتند هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش بازار دگر باز بویم نه در این واقع حافظ تنهاست قرغه گشتن در این بادیه بسیار دگر